يغني آواز می خاند، اغنیت ترانه رومانتیک، النغمه، آهنگ، النجمه، ستاره اراد شخص ان يتصل بزوجته، لكنه اتصل خطا بأبيه ابيه، يغني لها أغنية رومانسية فوجدها ساکده رکزف رقم فعرف انهو ابوه فعاده یقول لیل اشتراکی بی هذهین نغمه یرجل ضغطو علن نجمه طرف میخواسته به خانومش زنگ بزنه اشتباهی به پدرش زنگ میزنه و شروع میکنه به خوندن یه ترانه اشغولانه. بعد میبینه طرف ساکته به شماره دقت میکنه و متوجه میشه که پدرشه بر میگرده میگه برای خرید این پیشواز لطفاً کلید ستاره را فشار دهید